لم ولم السيف خدلانا ولم جبين إصغاء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد و ثنا و صفت به خداوندی که به ما نعمت جهاد و هجرت را نصیب فرمود. درود و بر رسولی که به ما طریق جهاد و هجرت را تعلیم داد. برادران مجاهد و مهاجر به برنامه امروزی از جمعه تا جمعه خوش آمدید. خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته هجرت و جهاد شما در نزد الله تعالی قابل قبول بوده باشد. همکاری عزیز چطور می شود که در شروع برنامه چند اندرزها را به خدمت شنوندگان تقدیم نماییم بله همکاری عزیز خدا کند اندرزهایی را که تقدیم می نماییم درس خوبی برای شنوندگان عزیز قرار بگیرد سلامتی در سکوت است سر خبر از گرسنه ندارد ارزش عمر لباید باید دانست عجل نمودن در کارها موجب پوش است ظلم برستمگر عین عدالت است مقررات و مقدرات الهی تغییر ناپذیر است حریص جز با مرگ قانع نمی شود نالایق سزاوار نوازش نیست هنگام خشم تصمیم مگیر کارهای خداوند از روی حکمت است خدا گرز حکمت ببندد دری زیرحمت گشاید دری دیگری بلی شنوندگان عزیز شنانجه در کلام شاعر شنیدید هر نوع مشکلات و تکلیف هایی که بالای مسلمانان واقعی می آید همه از روی حکمت است پس ما ببینیم که در این عصر پرست فتنه مسلمانان واقعی تحت مشکلات زیادی قرار گرفته اند هر روز خون مسلمان ریخته می شود مسلمان در هر مکان داد و فریاد می زند نصرت های الهی متأخر می شود، ولیکن بدون حکمت نیست. با وجود این، الله تعالی با رحمت خود دروازه دیگری را برای مسلمانان واقعی باز خواهد نمود. که آن نسرت الهی است که، انشاء الله مسلمانان. همان عزتی از دست ربطه خود را دوباره به دست خواهند آورد. در بخش اولی برنامه همکار ما موضوعی را تحییه نمودد در شیطان که اینک به خدمت شما تقدیم میگردد. بسم الله الرحمن الرحیم حقیقت شیطان حقیقت و ماهیت شیطان یک مسئله اساسی و مهم در ارتباط با عقیده فرد مسلمان می باشد که شیطان چیست؟ آیا شیطان موجود حقیقی است یا معنوی؟ یا همانطوری که ها گمان می کنند شیطان همان افکار بد و وسوسه های درونی است؟ یا شیطان همان میکروب ها هستند آنگونه که ها معتقدند؟ یا به عبارت دیگر شیطان نماد دی اشر بد است؟ که با اسم شیطان از آن صحبت می کنیم و عقیده اهل سنت و جماعات در این رابطه چیست بنابر بر عقیده ما شیطان از طایفه جن ها است همان طور که خداوند تبارک و تعالی می فرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه آنگاه را که ما به فرشتگان گفتیم برای آدم سجد کنید بخاطر اکرام و احترام نه عبادت و پرستش همگی سجده بردن به جز ابلیس که از جنیان بود و از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و ما با وجود جن ایمان داریم و میدانیم که شیطان از طایفه ها است و او همراه تمام انسان ها است و با هر انسان شیطان قرین است و دلیل این فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم است جدر حدیثی که مسلم از ابن مسعود رضی الله عنه روایت می کند، به آن اشاره کرده و می‌فرماید: ما می‌نکم من احد الا وقد وَكَلَ قَرِينَهُ من الجِنِّ وَقَرِينَهُ من الملائِكَةِ قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق هیچ کدام از شما نیست مگر اینکه همراهی از جنی و همراهی از ملائکه با او قرین شده است و گفتند، شما هم یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند حتی من هم ولی خداوند من را بر او غالب کرده است و فقط به حق امر می کند نمی تواند مرا به کارهای نادرست امر کند لذا همراهی هر انسان همدم هم, هم از جن است حتى همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تفوتك خداوند رسول الله صلى الله عليه وسلم رباره غالب ومسلط گردانه داست. دا وآره جز بحاق ودرست عمر نمي كنات. خداواند می فرمایات. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بگو پناه برم به پروردگار مردمان، به مالک و حاکم مردمان، به معبود مردمان از شر و وسوسگری که واپس می روید اگر برای چیره شدن بر او، از خدا کمک بخواهی و خیشتن را در پناهش داری. وسوسگری است که در سینه های مردمان به وسوسه می پردازد و ایشان را سوی زشتی و گناه و ترک خوبی ها و واجبات می خاند. با توجه به آیت فوق وسوسه یا از جانب انسان های بدکار است و یا از جانب جنی ها است پس شیطان جنی هم باعث وسوسه انسان می شود شیطان صاحب فرزند بوده و پیدرفی افزایش پیدا می کند افتتخیدونه و ذریته اولیاء آیا او و فرزندانش را بجای من سرپرست و مددگار خود می فرزندان شیطان و کسانی که از او تبعیت میکنند همواره در تلاش هستند تا نسل بشری را در این دنیا گمراه و منحرف سازند. همکاری عزیز، در هفته گذشته یک پارچه‌ی جالب بدستم افتید. اگر اجازه شما باشه، به عزیز به خوانش میگیرم. گفتگوی تبهکار با آقا کاری به آقا گفت روزی که من بر خود ستم کردم تو بر دین سیاست را نقاب دین زدی تو تو کاری کرده بسیار ننگین کجا دین گفته با چین دوست باشید و یا روسیه کافرتر از چین فشاری مصلحت یک بار باشد نه چندین بار و چندین سال و چندین کجا دین گفت آزار و شکنجه، کجا دین گفت فحاشی و توهین، کجا دین گفت مکر و حیلبازی، کدامین دین کدامین راه و آین؟ حدیث و قصه شد بنیاد مذهب، روایت کرد دین را زشت و چرکین، نگو مذهب بگو جهل و خرافه، نگو دین برچین پوسید آین، تمامی پیروانی تو خواریچ، تمامی چهره ها بد و آگین. تبهکاری من با توبه پاک است، ولی شد هفت دریا از تو چرکین. دلی تو سنگ شد آقازی نیرنگ، بگوشی تو نصیحت مثل یاسین. ستمگر بودم من بر خود، تو یک ملت فنا کردی بسدکین. بر این شاهی که بادین شد سوارت، دوست لعنت بگو ای دوست آمین به ترس ای خرمگست روزی بناگا همکوبت تو را پرهای شاهین دوست لعنت بران شاهی که مرده دوست لعنت برین آخوند بیدین سرت را گرم کردند ای برادر بدعوایی که باشد در فلسطین بیبندی بندی گرفلنگت را بیبندیم تمامی کوچه ها را شم و آذین خدا بخشت مرا شاید تو را نه که من بر خود سیتم کردم تو بردین چرا تو ای شکست دل <متصال> خدا خدا نمیکنی خدای چار ساز را چرا صدا نمکونی. به هر لبی دوایی تو فری ت اوو سزن برای دردی بامان چرا دعا آ نام کنی با قطرقط را اشکی تو خدا نزار مکنا با وقت گیر یه ها چرا،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 Hudo-hudo <kuda> na me kuni, charo tu aishika stabil, hudo-hudo na me kuni, charo tu aishika stabil, charo sadon na چرا صدا نمیکنی چرا تو اهی شکست دیل خدا خدا نمیکنی خدای چار ساز را چرا صدا نمیکنی چرا صدا نمیکنی چرا صدا نمیکنی اکنون نوبت به بخش دومی برنامه رسید در این بخش، گزارشات داغی هفته به خدمت شما تقدیم می سر سر لندن، نوی ربیل اول مطابق یکی فیبرواری. نو شخص در لندن به جرم این ایشان خواهان انجام یک عملیات جهادی بودند، تحت محکمه قرار دارند. از این جمله تاکنون کنون چهار تن ایشان به جرم خود احتراف نمودند، این نو نفر می تا مرکز اقتصاد ریاست لندن سفارت آمریکا و دوتن از علماء یهودی را تحت هدفی خود قرار دهند این برادران اسیر شده همه طابعیت بریتانیایی دارند ولیکن در اصل ایشان از پاکستان و بنگلدیش می باشند در اخیر می خواهیم تذکر دهیم که نیت مومین از عمالش محبوب تر است ازالتالا می خواهیم که از این برادران ما قبول فرماید مصر نو ایرابیل اول مطابق 1 فوریه تماشاکنندگان در میدان فوتبال با هم دیگر به جنگ اوغوز نمودند که در نتیجه 74 تن on قتل رسیدند بعد از این واقعه جنگ از این بیشتر شدت یافت تاوری که همه تماشاکنندگان داخل شهر گردیدند جنگ خود را ادامه دادند در این واقعه 3 نفر کشته و 1500 نفر زخمی برداشتند در هفته گذشته دانمارک 11 ربیل اول مطابق 3 فیبرواری دوتن میخواستند تا کورت ویستر راگرد را که چند سال قبل به رسول الله صلی الله علیه وسلم تمسخور نموده بودند و قتل برسانند از سای حکومت دانمارک دستگیر گردیدند یکی از ایشان به هفت سال و دیگری به پنج و نیم سال زندان محکوم گردید این دومین هدف Bakhatiri katkelmalaan Court Westergaardi, Syria, 22. rabi al-awwal, mukavikin 4. februari. Derjyöni 7. vuoteen, valtakunta Syria, noin 200 henkilöä mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan mukanaan terrorists به سفارتخانه سوریه هجوم بردند از این جمله در برلین و لیبی و مهاجمان توانستند تا سفارتخانه سوریه را تحت تصرف خود درآورند یک روز بعد از این واقعه اوباما افراد سفارتخانه اش را از سوریه به واشنگتن انتقال داد تا که تحت هجوم قرار نگیرند نایجیریا 15 ربیع اول مطابق هفته فیبرواری مجاهدین تحریکی بوکو حرام در شهر کانو بالای دو مرکزی پلیس هجوم بردند البته گفته می شود که در مراکز مذکور 100 نفر از مجاهدین تحت اسارت بودن مهاجمین از اسیران را آزاد سازند ولیکن در نتیجه این عملیات تعداد زیادی از پلیس به قتل رسیدن باز هم نایجریا 16 ربیل اول مطابق 8 فیبرواری مجاهدین بوکو حرام در شهر کادونا بسیاری از مراکز فوج را تحت آتش کشیدن تعداد کشتشدوان در این جنگ معلوم نیست بریتانیا 15 ربیل اول مطابق 7 فیبرواری ابو قطاده فلسطینی از زندان بریتانیا ها گردید وی ای بایلت این که مجاهدین را به جهات تحریز نمود در سال 2002 گرفتار شده به زندان محکوم گردید کمیته نو صادرات در زندان بریتانیا سیپری کرد تویلند 11 ربیع الاول مطابق 7 فوریه در مرکز چک پست jak شهر پیتنی یک فوش پنج مسلمان را به قتل Kimi ولیکن بعد استحقیق معلوم شد که کشته شدگان با خواست سلاح ندارن شنواندگانی عزیز این بود داشته های برنامه امروزی ما که به خدمت شما تقدیم کردیم. با شنیدنی یک کرانه فارسی همه شما را به خداوند منان می سپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته bandagani allah ahdi bandagi ba pairawani in ara Toki zindagi dar mast bandagani allah ahdi bandagi ba pairawani in Toki zindagi darmast Toki zindagi darmast Von Dunkelheit umzingelt Führtest du mich an dein Licht Und dies ist deine Gnade Du gewährst sie wem du willst Von Dunkelheit umzingelt führtest du mich an dein necht und dies ist deine gnade du gewährst wiem wen du wendt wann allah eh ahdi bandagi bo mast pairawani in arahe takhi zindagi dar mast Bandagoni Allah, Achdiban in Dagi most, Pyrawoni in Araim. Toki sind in da gidare most. Toki sind in Wie kann ich dir nur danken, dass du mich recht geleitet hast?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 عهدی بندگی با ماست پیراوانی انا راهی تا که زندگی در ماست بندگانی اللهی عهدی بندگی با ماست پیراوانی انا راهی تا که زندگی در ماست Toki zindagi darmast. Der Iman ist unsere Stärke, der Islam ist unser Stolz. Für Allah und sein Gesandten nimm wirs mit der Menschheit auf. Der Iman ist unsere Stärke, der Islam ist unser Stolz für Allah und sein Gesandten nehmen wir mit der Menschheit auf allah dagi allah Ach die Banin da gi bommos Toki zindagi dar mast, Toki zindagi da mast, Mit den Füßen hier im diesseits und im Herzen im Firdaus, Wer soll uns da noch schaden? Damit hält uns keiner auf. Mit den Füßen hier in dieser und dem Herzen im Verdaus. Wer soll uns da noch schaden? Damit hält uns keiner auf. Bandagoni Allahim Ahdi band. Banda ghi bhamast parawani nrahim, toki zinda ghi dar mast bandagoni Allahen. Ahdhi bandagi bhamast parawani nrahim, toki zinda ghi dar mast. Ta ki zindagi darmast. Bandagani Allahim. Ahdi bandagi bammast. Pairawani inrahim. zindagi zindagi darmast.